بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وعلامه وأصحابه الطيبين الطاهرين وأشهد أن لا إله إلا الله وأحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمد عبد الله ورسوله أرسله الله بالهداه ودين الحق ليظهره على الدين كله ولا يكره المشركون برضيع مسلمان در هفته گذشته در درس ما که درباره شرک و توحید بود یا توحید و شرک بود که در اونجا مقایسه داشتیم بین موحدین و بین مشرکین خلاصه درس هفته گذشته ای بود که در زمانی که رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبعوث شدند در اونجا مردم تقسیم شدن به دو طایفه یک طایفه از اینا طایفه موحدین بودن یک تا پرستا بودن که عزت رسول کریم صلی الله علیه و سلم بود و آل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن و صحابه کرام ردوان الله تعالی علیهم مجموعین اینا بودن در بخش دگیش، طرف دگیش مشرکین بودن و در بین این اونا هم سه دسته تقسیم شده بودن سه چهار دسته بود که در عصی از اونا مشرکین قراش قرار داشت مشرکین نصارا قرار داشتن که با وجود از ادعا میکردن که ما پیروای عیسی علیه السلام هستیم با دروغ چون شرک داخل کرده بودن در عقیده خود و یهود بودن که اینا هم عادتهای شرکی و شرکامیز داشتن و مشرکین حبشه بودن که اونا هم بعضی از عادت ها را داشتن ده هفته گذشته گفتیم که اگر ما می که حق بوفاميم فهمیدن حق تنها نمیشه یک انسان خوبی ها را بوفاما بلکه حق انسان وقتی مکمل میفهمه که بدی ها را هم بفهمد تا که خدا از شرک و از چیزهای خراب نجات بدهد اگر شرک نشناسی بوس چې ته خدا به قایمه میکنی اگر میکروب نه فومي چه قسم خدا به قایمه میکنی اگر ویروس نه چه قسم انتی ویروس دزی استفاده میکنی بنابراین ان زوروست انسان به شکل مقایسوی هر کدام از یې بفهمه و وقته که توحید و شرک شناخت فامید باز, باز, باز از اون میفهمه که موحد چی صفت داره و مشرک چی صفت داره باز انسان میتونه از او خلاص بکنه در هفته گذشته همجان گفتیم که توحید تقریباً اقسام زیاد داره خب ما و اقسامش به شکلی که مثلا توحید الوهیت و ربوبیت اینا هستن اینا هم شامل بحث هستن چون درس مقایسه‌ای است تو مشخصاً اقسام توحید نمیگیم از این خاطر گفتیم که مثلا ما صحبت کردیم سر توحید در ذات و شرک در ذات و گفتیم که توحید در ذاتی است که یک نفر بو یک لم یلید و لم یولد و لم یکن له احد خداوند نیازی به فرزند دختر باشه یا پسر یا به والدین مادر و پدر و یا شریک و همسر و همتا ندارم. این عقیده توحید است و عقیده شرک چی بود که در مقابل مثلا گفتیم که مشرکین قریش میگفتند که ملائکه ها دخترای خداست مشرکین نصارا میگفتن که این مسیح ابن الله هست عیسی علیه السلام بچه‌ی خداست و یهود میگفتن که آزایر زائر بعض یهودی ها میگفتن که آزایر بچه بچه‌ی خداست اینا توحید و شرک در ذات شد و بعد از این توحید در صفات بود که منظور از توحید در صفاتی بود خلاصش که یک مسلمان واقعی عقیده داره که صفات خدای عزا و جل هیچ وقت مشابه با صفات مخلوق نیست و صفات مخلوق هم مشابه با صفات خداون شده نمیتونه بناهن صفات خوب یا خرابی که ما داریم ای صفات مربوط میشه به انسانها ما انسان ها روح داریم ما انسان ها جسد داریم ما انسان ها مذکر و محنست داریم ما انسان ها خوب و بد داریم ما انسان ها سیاه و سفیر داریم این صفات ما هست اما خدای عزوجل که است صفات از اون صفات عالی، صفات قدسی صفات مقدس هست صفات که مطابق شان خداوند متعال است. بناها این صفاتی که ما داریم ایر ما باید به خداوند متعال جل جلوهو نسبت نتیم به نان ما نمو گفته نمیتونیم که خداوند انجینیر است چون انجینیر صفتی یک انسان است. یا نمیتونیم بگوییم خداوند دکتر است یا خداوند هنرمند است. الا یاز بالله چون این صفات صفات انسان است و اگر ایره کسی نسبت به خالق بده اینجا چه شرک در صفات پیدا میشه. مشرکین چه مشکل داشتن؟ مشرکین مثلا صفات خداوند متعال جل جلاله جل مثلا احیانا مشرکین بعضی صفاتی که به مخلوق است، جسد جسد به خالق نسبت میدادن مثلا مجسمه های خداوند جور میکردن مثلا مذکر و معنص به خداوند نسبت میدادن اون دوها مثلا میگن که سیتا معبود معنص است رام معبود مذکر است کالیما مثلا معبود سیاه است به این شکل اینا صفات انسانی را به خالق میداد مشرکین نصارا چی میکردن؟ مشرکین نصارا هم مثلا بعضی اصفت هایی که مخصوص مخلوق است او را به خالق نسبت میدادن مثلا مخلوق تجزیه میشه دو قسم از سی چیز مثلا انسان از سر تا جوش از تناد است تا پای اینا هم میگفتن که خداوند خدای پدر از خدای پسر از روح القدس است اینی قسم صفات انسانی رو به خداوند متعال نسبت میدادن و اینا مشرک شدن و حتی در کتابایشان مثلا شما اگر کتابای دبایبل بایبل اونا بعضی صفات های رو به خداوند متعال نسبت دادن مثلا مسیحی‌ها میگفتند که خداوند از خلق نمودن بنی اسرائیل پشیمان شد. الا عیاذ بالله پشیمانی کی است؟ یک صفت زشت ولی یک صفت آجیزی بر انسان است که کار انسان می‌کنه واسه پشیمان میشه. ولی این نسبت مسیحی‌ها به خداوند میدادند که این شرک است. یا یهودی‌ها چه نسبت میدادند؟ یهودی‌ها بسیار ها کردن در مقابل خداوند متعال جل جلو. حتی میگفتند که یاد الله مَغْلُولَه. اونا می‌گفتن الا عیاذ خداوند بخیل است. دستایش مثلا منظور منظورشانی بود که یعنی خداوند بر هر کس خوابت نمیکنن این عادات شرکی چی بود در صفات که از یهود بود سه قسمه که گفتیم توحید عبادت بود و شرک در عبادت توحید در عبادت است که هر چیزی که نامش عبادت است اینه فقط ایا که نعبودو بود خدای خاص را عبادت میکنید بسیار ساده هست نظر چی است عبادت است بنا من از خدا به غیر از خداوند به نام هیچ کس نمیدم سجده چی است عبادت است پس من سجده فقط به الله میکنم رکوع چی است عبادت است پس من رکوع فقط به الله میکنم دعا عبادت است خداوند گفته او دعونی از تجب لكم و ما دعا ها بکنین ما اجابت میکنم پس ما ی ضرورت نداره که بروم در پیش فلانی نفر یا پیش قبر فلانی نفر یا پیش مردی فلانی نفر و بر ازید صدقه پیش بوتیا فلانی بر ازید دعا بکنم که تو بر برام بچه بتیا دختر بتی چون خداوند گفته که دعا عبادت است او دعونی دعا کنین برام ما. از ما بخاهین از تجب لكم ما اجابت میکنم پس ما ی ای ایت قرانو فهمیدیم و هیچ کس دیگه دست دعا را بالا نمیکنیم از هیچ کس دیگه نمیخایم فقط میم که خدا از تو می خواهیم. و همیشه روی خودم به طرف قبله دارو می دعا می کنیم یا مثلا دستای خودم به طرف می گیریم در مقابل ما کدام مخلوق نباشه اینجاست یه ای توحید در عبادت ها ایسی ایس ای سی چیز ما دو افته خلاص کردیم امروز نوبت است که مثلا چند چیز دیگهش که مانده که یکی توحید و شر در استعانت است توحید در استعانه چی که مثلا یک انسان مؤمن فقط همیشه 24 سات در زبان خود ورد زبان خدا که باشه ایا که ایاکه نستعین خدای خاص از تو کمک میخواییم خدایا خاص از تو کمک میخواییم اینجا علماء میگن وقتی که ایاکه گفت مشرکین میگفتن که نستعین و که خدای ما از تو کمک میخواییم نستعین بله می گپ ما از خداوند کمک می خاییم لیکن فرقشان چی بود کہ اینا می گفتن ما از خدا هم کمک می خاییم از دیگر مخلوقات هم در امور مثلا که مربوط به خداوند است کمک می خواهیم. در این در مساله استعانت بسیاری کسا یک نقطه را غلط می اشتباه می یکی عالم اسباب است و یکی مصبب الاسباب است اینا ل چیزایی است که به اسباب تعلق می گیرن مثلا ما و شما ضرورت داریم که کار کنیم عالم اسباب است ما دارم خودت موتر داری من میگم مرا تا بیمار برسان پس این وسیله عالم اسباب از دای خداوند اجازه داره که من است تو کمک بخوام بگم من موتر تبرم تا, تا شال من برسان یا مثلا تو دکتر هستی من پیش تو میام بر من بگی در عالم اسباب که اینی دوا را بخو اینی دوا را نخو اینی غذا را بخو اینی غذا را نخو پس اینجا عالم اسباب است عالم اسباب انسان میتونه از هر سبب و که بر ما هست استفاده بکنن اصل فیلمه کتابچه شده کتابچه دبته من کار دارم یا کتاب دبته کار دارم یه عالم اسباب است اما مشکل به است که بسیاری وقتها چیزهایی که در عالم اسباب نیست مربوط میشه به مسبب الاسباب که خدای عزوجل است مثلا بچه دادن دختر دادن زندگی دادن این چیزا مربوط به خداوند میشه اینال وقته یک نفر من مریض شدم اینال وقتی که من مریض شدم میرم پیش دکتر، دکتر برمنوخانه وشتام میکنه، میرم پیش فارماسیست، اون برام دوا میده. این عالم اسباب است. این از نگاه شریعت هیچ مشکل نداره و انسان باید از استفاده بکنه. اما یک وقتی دکتر برام میگه که والا استاد مریضی تو تو خطرناک است که دیگه allele گپ از دوا تیر است. allele که اگه دوا کارته بکنه خوب، اگر نکنه از دوا ختم هستی دوا, هست. دوا بر تو چیز نمیشه در اینی قسمت گپ از اسباب چی شد ختم شد داکتر گفت که اسباب سرد قطع است نمیتونی این حال رجوع میکنیم به مسبب الاسباب این حال مسبب الاسباب کیا زاد الله جلال جلال مدست خدا بالا میکنم خدایان تو بر من شفا نصیب بکنی اله تو بدون از این اسباب برای ما شفا نصیب بکنی اما اگر در اینی قسمت من میرم پیش کدام انسان دیگه میگم تو برای ما شفا بدی شایدو شمشیره تو برای ما شفا بدی. پیر بلند تو برای ما شفا بدی. فلانی خان تو برای ما شفا بدی. اینجا اینی مردم ها را در مسبب الاسباب داخل کردم پس اینجا گپ چی شد؟ یه عادت مشرکین بود که وقتی که از اسباب قطع باز نوبت میزید بود که یا الله ایوازی یا الله میگفتن یا عیسی ایوازی یا الله میگفتن یا مریم یا فلانی شیخ یا فلانی پیر یا پیر بلند یا پیر پخت یا پیر قدراز. یا بلاخره گپ سرزی میشد که اینجا برشان مشکل ایجاد میشد چون در جایی که باید الله بگویی در زبانت همیشه باید نام الله باشه اینجا مشکل ایجاد میشه از این خاطر اینجا استعانته خب من مشکل دارم من مشکل دارم یک کسی پرسان میکنم من مشکل دارم در مشکل خود در درد خود در غم خود در رنج خود چی باید بکنم؟ خداوند متعال جل, جل جلوهو بر ما در سپاره دوم چی میگه؟ میگه وستعینو به صبر و صلح وقتی که تو مسلمان هستی مؤمن هستی مشکل داری زرد درد اومد رنج آمدن چیکو دو کار بکن کار اولش چیست؟ که تو صبر بکن امر خداوند است در مصیبت ها روی نزن، سیلی در روی زدن یخن پارا کردن این جای خدا که کندن یخن خدا چیر کرده رو کندن این عادت ای ها عادت های ناروا هستند مل خطوت حدود حدود بعضی زنا دست سیلی میدن لط خود یا شق الجوی در اسلام حرام است یا خدا مثلا من یا کتب بکس بزرنم یا کتب روی خدا پاره بکن نه نه نه نه گفتا وسته اینو به صبر اول صبر بکن بعد ازی که صبر کردی وصله کو نماز بخوان و نماز مستقیما تر ارتباط یک انسان با خالقش در چی مستحکمه شد در نماز وست جد وقت داره سجده خدا به خدا قریب بساز پس ما وضو میکنم میرم نماز میخوانم الهی من مریض استم الهی من مشکل دارم الهی من درد دارم الهی ما فلانی دارم این ها دا کسایی که عقیدی درست توحیل نمیفهمن، به ایواز ازی که در وقت مریضی اوداد به الله جل جل رجوع بکنم میرن پیش یک زیارت که تو بر ما شفا نصیب بکو، در غزنی میرن که تو برای ما شفا نصیب بکن او اشبولی بابا تبه مون تس حت را کن شپوری باباده بدل توایی د زلگی سره مازنینه که دمال مال لاسه کار کید ما بخوال زان ده د خپل زان غم به می خورن زان ته به شفار کول زان ته به این ای خاطر انسان مسلمان وقتی که مشکل پیدا کات و صائنو بالصبر چرا خداوند مطالبه بر ما گفته که در پنج وقت نماز در مقابل خداوند ساچو و در هر رکات نماز به خداوند تعهد کو چی تعهد کو ایا که نعبود و ایا که نستعین خدای خاص ترا عبادت میکنم و خاص از تو کمک میخواییم خیلی چرا پیش خداوند میگی خاص خاص خاص خواست, خواست آلو نفر که میره مثلا از شاید شمشیر کمک میخوایه او نماز نمیخونه خیر سوخ خوبی چرا تعهد نداره نماز نمیخوانه روزه نمیگیره بیکار که ما میره یکان سگره دود میکنه یکان فدر مدر میکشه وقتی که پسان آمد بازی همیره. اما تو وقتی که پنج وقت نماز میخوانی پس کت خدا تعهد میکنه که ایاکن عبودو و ایاکنن ساین خدا فقط ترا عبادت میکنو و فقط از تو کمک میخوانی پس چرا از خداوند کمک نمیخوای از کس دیگه کمک میخوانی؟ این اینجاست که انسان مؤمن و مشرک فرق داشتن مشرکین نصارا ایواز یا الله یا عیسی میگفتن ایواز یا الله یا مریم مقدس مه. ای مریم مقدس بر ما بچه‌ بده ای مریم مقدس در ما دختر بده ای عیسی علی السلام تو بر ما بچه و دختر بده اینا عقیده توحید ترک کردن مشرک شدن و راه عیسی علی السلام پیغمبر است پیغمبر است لکن پیغمبر نمیدونه برعکس بچه‌ و دختر بده حتی بچه خودش فوت میکرد، دختر خودش فوت میکرد، خود پیغمبر وفات میکنه نمیتونه بر کس زندگی بده مشترکین یهود اینه کارها را میکدن به مخلوقات رجوع میکدن مشترکین قراش چی میکدن؟ یا هوبل, هوبل، پیش هوبل چی میکنه؟ هوبل. چرا یا هوبل میگه؟ یا لات یا منات چرا تو میگی؟ میگه خو برادر شما مردم بیعقل هستین اه؟ شما نمی فهمین پدرهای ما پدرکلانای ما برای ما قسمه کردن میگفتند که اینه میلات اینه منات اینه هوبل اینیا دوستای خدا بودن بنده های نزدیک خداوند بودن مقرب بودن به بارگاه خداوند ما روی سیاه هستیم ما شرمنده هستیم ما کت خداوند نزدیک شدن نمیتونیم تونیم این حال ما میریم از بود میخوایم خواهیم باز ای برای ما چی میکنن ای باز برای ما پسند که باز ما شما مییم. دیگه بازی واسطه میشه و وسیله میشه و چطور میشه و چنان میشه باز اگه میزنه و اگر کیلهم الطبیعه ما انزل الله. در آیات قرآن برشان گفته میشه که وقت گفته میشد که شما متوعد بکنید رو چرا که الله نازل کرده. الله میگه ایا کن عبدو بگو. الله میگه ایا کن استعین بگو. الله میگه واسعین و به صبر و صلا حالوبل لطببی او معلفینال یا با انا برو ما های شما را قبول نمیکنیم بل لطبی ما گپ کیا رو قبول میکنیم گپای پدرهای خودن؟ تو آمدی در روز نشه چهار تا کتاب خااندی نخواندی این مولیهایی که در غانستان ایدا قتر شد ای گپا رو نمیزد این مبلوی های ای گپ رو نمی حالا تو آمدی بر ای گپار رو میزنین اینا توی ای یارا سعی کنین یجا پای نوا سای کنین پدرا و پدر کلانای ما اینمی زیارت تا بود اینمی قبرا بود اینمی تاویزا بود زب جاروکم زیارتونه شین که بابا کمی قبول کی دا سوالونه ای تمام روز خوانده شد، با فارسیوانا با دگهش میخوان که مثلا <coughs> بیا که بریم با مزار مولا محمد جان ها گریہ کویم زارزار علی شیر خدا درد دوا کن اینا کل گی میگفت یک مولا نبود یک مولایی بود نبود که به خیر دلچی رو بگه دلچی جان نبو ایگفه رقاص جان نبو ایگفه ایگفه چرکامیز هست حالا شما آمدین سر سره هنرمند های مرحوم و مغفور و مرحوم لهو و مغفور لهو سر از شما انتقاد میکنین ایگفه شما را قبول نمیکنیم خلاص مشرکین این ایگفه ها را میگفتن میگفتن و ازاقی الله متبیع ما انزل الله وقتی که برای ابو جهل و ابو لهب و یا گفته میشد که متابعت بکنین از قرآن عین قرآن از میشون میگن قالوا بل ما الفین علیه و انا می بلکه ما متابعت میکنیم چیزی که پدرای ما کردن چیزی که پدرای ما کردن رواج ماست اچ از رواج خود نمیشه یک مجلس رفتیم گفتیم خدا میگه که بیوارن باز چه حسابتون که شی خدا اختیار کنن گفتن استاد جانمون دلت پختو کو او, او. پا دیه ما سایلو که من قرآن نه پختو که ما یختم خواهی بد کردین مرا خواستین دیگه نو زی چه بکم دلتا؟ خود تم پختونی؟ مال توبه؟ که مقصد ده پختون دایشه زی پختونیم یا میپلار پختون دایی زی دکار دا دا دا کام دادی پیساب چه زی بیا دوزخت الارس ما ما لم یحکم بیمه انزل الله پا اولئیک هم الكافرون کسی که مطابق حکم خدا فیسلا نمیکنه آه نه نماز بیخانه ما اوکی دامنو قرآن روزه نیستو رو کندو پی باره و در خود که منگ اسلام نمانو منگ پختو که و خلاص علیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علی من تبع الهدم مفتوم خلاص ما اینجا یک دقام شیشتا نمیتون خیسم از مجلس بنامه خدا میگه که قصاص این میگه بعد خدا میگه که برای بیوه اجازه میده که شوهر خودو اختیار کنه نه میگه ای این برای تو که که ما بشینه خدا تو میگه تو تو میگه نه ایره. ای خلاص بلنا تابعوا ما الفین علیه اما انا بلکه ما پیروی میکنیم از چیزی که ما او برای ما گذاشته شده از طرف پدرای ما خلاص که تو به یه شکل میکنیم باز اونجا ادعای ایمانانه نکن چون در قران عظیم شأن میاد که عملاً میحکم بما انزل الله دقیقاً میشک شش کیلولنگی بزنم مثلا 3 متر ریش بانو کالای صفحه دو پوشو باز هوا و قوا و کار شیطان میکنی نامت ولی گر ولی این است لعنت بر ولی کارا نمیكنی باز وقتی که حکم خدا برت گفتمیشو می باز میگه اوه حکم خدا حکم خدا ای, ای, ای قسمین است مثل که به شعر و سارق که از چیز از شعر است اما چشم شعر دم نداره و شعر پای نداره و شعر من رسامی کو خود دم نداشته باشه و پای نداشته باشه و تنه نداشته باشه خچی داشته باشه ای چمون تو نامش باشه چیز خلاص ان الان ایشو توحید sanat چهارم قسمش توحید و شرک است در قانون در قانون چه قسم است انسانهای موحد عزت رسول کریم صلی الله علیه و سلم آل بیت پیغمبر و صحابه کرام به قرآن ایمان داشتن بناهن قرآن عزیمشان که کلام خداوند است حلال و حرام تین کرده و رسول اسلام آمده بر ما حلال و حرام و تشریح و توضیح کرده ای حلال است ای حرام است بناهن وقتی که قرآن عزیمشان بر ما گفت که گوشت خوک حرام است وقتی که خدای عزیز و جل گفت که گوشت خوک حرام است بنا این گوشت خوک حرام است تا یوم القیامه تا روز قیامه نه پیغمبری را تغییر دادا می نه صحابی را تغییر دادا می نه دوست خودای را تغییر دادا می نه دشمن خدا ایچ کس ای اگر کدام مولوی گفت که گوشت خوک جایز است بفرامین که شیطان است. اگر کسی کدام حدیث را روایت کرد که در یه حدیث گشت خوک حلال دانسته شدن یه حدیث پاره پاره کنید اینو سپرطین چون حدیث است. بنا ان انسان موحد چی اقیده داره؟ انسان موحد عقیده داره که صلاحیت حلال و حرام هست کی داره؟ فقط الله جل جلاله داره کسی دیگه نمیتونه که قانون بسازه در حلال و حرام آیت قرآن نازل شد ببینین مسیحی چی می کردن؟ که مشرک شدن آیت قرآن نازل شد که اتخذو احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله اتخذو احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله اتخذو گرفتن کی مسیحی احبار و رهبان خدا اربابن خدایان من دون الله والمسيح ابن مریم وحضره مسیح ابن مریم حضرت عیسی علیه السلام رو گرفتن احبار احبار چی رو میگفتن احبار جمع حبر است حبر در زبان عربی رنگ میگن محور بوتال رنگ میگن حبر رنگ میگن علما به خاطر چی حبر میگفتن به خاطر از که علما زیاد قلم و کاغذ کار میکردن و نشر میکردن از این خاطر علما رو چی میگفتن حبر میگفتن و جمع حبر احبار میشه و چی چیره میگفتن پیرو گوشن و کس که ترک دنیا میکرد اینه راهب میگفتن جمع راهب رهبان است خداوند متعال میگفتن اینجا گفته که اتخفت و گرفتن مسیحیا ها ایساوی ها احبار هم آلمای خودن پاپ و کشیش خودن و رخبان هم و کسای که ترک دنیا کردن و در بین کلیسا زندگی میکنن راهب و راهبی خودن پیر و پیر خدا و اینیای خدا مردمای های نشینه ارباب جمع رب از خدایان گرفتن رب خود گرفتن من دون الله و غیر از الله جل جل هون. آیت شریف سوی سوره سوری التوبه سپاری دوام یک صحابی مبارک بود که عدی بن حاتم نام داشت حضرت عدی رضی الله تعالی عنه در اصل مسیحی بود مسلمان شد ایمان آورد گفت ای پیغمبر خدا ماخ علما سکنین شرک در قانونه گفت ماخ و علمای خدا و راهبای خدا پرستش نمی کردیم او به این فکر است که پرستش ماناشیه است که تو برای یک کس سجده کنی پرستشش کردیم نخیط سجده کردن هم پرستش است اگر در وقت مشکل نامش رو گرفته ای هم شرکست است اگر به خداوند شریک هم ساختی پسر بچه ساختی این هم شریک است اگر در قانون خداوند در حلال و حرام خداوند در کس صلاحیت دادی این هم شرکست است دیگه شرک یک قسم نیست که فکر میکنید که والا ما خبر از اون عبادت نمیکنیم عبادت یعنی نماز خواندن پیغمبر صلی الله علیه و گفت که شما در حلال وقتی که حلال براتون حرام میکرد و حرام براتون حلال میکرد شما قبول میکردین ما قبول میکنیم امروز مثلا کلیسای لندن جلسه میگیرن درباره همجنسگرایی و همجنزبازی بازی شینند فیصله می, فیصل می کنند چی گفت؟ بازی از طرف کلیسا مشروعیت پیدا کرد امی صلاحیت علمه اسلام ندارد علمه اسلام مبلغین هستند نه مقننین اسلام قوی مقننش قانون اساسش قرآن عزیم است بناندر در اسلام وقتی که خدای عزوجل گفته که زنا حرام است، شراب حرام است تا روز قیامت کس نمی تونه که ایراد تغییر بده. ولو که کل علمای کل دنیا با هم اجماع بکنن، اگر کل علماء اجماع بکنن و با اجماع هم بشن در یک جایی و بگن که ما فیصله کردیم کل علمای کل عالم اسلامی و گفتیم که شراب حلال است، کلی علماء کافر گفتمیش. چون کس صلاحیت قانون نداره. برای این صحابی مباره گفت خدا؟ ما خدا رو پرستش نمیکردیم پیغمبر خدا گفت شما حلال که برتان حرام میکرد میپذیرفتیم بله حرام ها حلال میکرد میپذیرفتیم بله آقی میپذیرفتیم عالم هست اینم کفت اینمی پرستش هست دیگه این چی شد پرستش هست. یک نفر میعه گوشت گسفند بخوا یالا نیوالا صاحب چرا؟ بخو، گوشت گوسفند. آنها سپ بر ما پیرم گفته که گوشت گوسفند نخو. کی گفته؟ پیر. آه، چی گفته؟ گفته پیرم گفته که گوشت گوسفند نخو. برای آن انما گوشت گوسفند در زبان نمیزنم. از گشنه بمرم گوسفند نمیخو. گوشت گوسفند نمیخو. ای قربان الله براد میگه بخو، حلال است. اتخذ و گرفتن کیره اینه گفت شد نشد پس پیر خدا چی خود گرفت خدای خود در چی گرفت در ساختن قانون پس قانون حلال حرام مربوط خداوند میشه وقتی که ای گفت که پیر ما من برمان میگه که گشت و گزفن نخو سر من پیرم حرام کردن پیر تو چی کار است پیر تو چی کار است خائن کار مسیحی ها میکرد دیگه آه اگر یک کسی تکلیف خون داره خالص چربی پیدا کرده و دکتر برشمه که گوشت حرام نیست اما برای خودت چربی نقص میکنه نه خود خلاص ی عالم اسباب است دکتر گفت من گوشت گوسفند نمیخورم به خاطر چی گوشت نمیخورم به خاطر که من مریض هستم تکلیف دارم تکلیف من زیاد میکنه گوشت حلال است شما برادرها بخورین لکن من به خاطر مریضی خود خوردن نمیتونم این امانه بیادر شما که گوشت میخورین شما علمایی که گوشت میخورین شما شکم پرست هستین تن پرست هستین ها یه گوشت که گوشت گوسفندا که میخوره خب پیغمبر خدا را گوشت ران گوسفنده برش کباب کردن آوردن پیغمبر خدا کباب ران گوسفنده خور خب تو از پیغمبر خدا هم که یک رت با بالا هستین پیغمبر خدا به امر خداوند باید گشت و حلال است و تو میگی که نه ما حرام کردیم سر خود چرا حرام کردی؟ بخاطر از که ما با تقوی هستم آدم با تقوی گشت و گسفنده نمی خورند حرام است از خاطر برادر اینی مشکل در در, در در تحلیل و تحریم اینال شرک در چی میشه؟ در گذاری؟ انسان موحد میگه صلاحیت حلال و حرام فقط از ذات الله جل جلاله الله جل جلاله بر ما تعیین کرده که چی حلال است و چی حرام است و رسول الله که نبی کریم صلی الله علیه و سلم است بر ما تشری کرده و توضیح کردن علمای اسلام اینمی احکا قران و سنت بر ما تشری میکنن علما شرح میکنن واضی میسازن اما کس قانون جدیدی برای حلال و حرام ساختن نمیدانم قسم دیگهش قسم پنجمی که ما شما میخونیم او توحید در عقیده داشتن به اینکه خداوند بر ما نزدیک است ما انسان موحد چی عقیده دارم عقیده‌م از قرآن میگیرم قرآن عظیم برای ما چی میگه قرآن عظیم شما میگه که وقتی که بنده های ما در مورد ما سوال کنه اذا سئلك عبادي عنی فا اینی قریب از رسول کریم و سلام آل بیت پیغمبر و صحابه کرام ای آیت قرآنش فامیده بدن می خداوند متعال جل جالهو گفته که وقت بنده های ما در باری ما سوال بکنن ما به بنده خود خودم نزدیک هستم ما چطور می تانم خدا به خدا بیشتر نزدیک بسازم میگه گه وست جد وقتره عبادت کو، طاعت کو، در حالت سجده وقتی که تو نماز میخوانی سجده میکنی، در این لحظه تو به خداوند قریب هستی و خداوند بر تو نزدیک است. و در آیت دیگه قرآن چی میگه که من حبل الورید و نحنو اقربو الیهی خداوند میگه ما نزدیک هستیم به این بنده خود من حبل الورید از شارک گردنش کرد از شارک گردن کرده ما براز اون نزدیک هستم وقتی که خداوند متعال نزدیک است آیا از خداوند متعال که در کس دگی به من مهربان است کدام پیغمبر میتونه از خدا کده به من مهربان شده کدام صحابی میتونه کس ما کده به خداوند به من نسبت به خداوند نزدیک باشه و مهربان باشه کدام دوست خدا کدام دشمن خدا کسی دیگه میتونه هیچ کس پس ما وقتی که میفهمم که خداوند متعال جل جلاله بر من نزدیک است همیشه به ذاتی که نزدیک است و از همه مهربان است اگر مثلا ما بگوییم که مهربانی رسول کریم صلی الله علیه و سلام قدر زیاد است مثل کوه های افغانستان اما مهربانی خداوند ما گفته نمیتونه که به اندازه کوه های کل دنیاست چون مهربانی خداوند و رحمت خداوند ما نمیتونیم که لا نه او رو ما احسایه گرفتم میتونیم نه اندازه کردم میتونیم نه گفتم میتونیم که این قدر است پس او ذاتی که مهربانیش هیچ اندازه ندارن پس ما در مشکل میرم میگم یا الله خداوند به من نزدیک است خب ایره فامیده خی مشریکین چی میکردن که او رو خدا کدام وقت مثل مشریکین نسازیم مشریکین قریش چی میگفتن؟ مشریکین قریش اینا تشبیه میکردن الله را به پادشاه ها. میگفتن فلانی پادشاه است. ما وقت که میخوایم خدا به ای پادشاه نزدیک بسازم به پادشاه خدا نزدیک بسازم. چی باید بکنم؟ میگفتم من به خاطر اینکه برای این پادشاه خدا نزدیک بسازم پادشاه وزیر داره، پادشاه رئیس دفتر داره، پادشاه بادیگار داره، پادگاه از خودگی داره، پادشاه چند نفر القی دارن که گردگرد از میگردن اینی از طریق از اینا من میرون پیش پاچا والا قاری صاحب تو پیش فلانی پاچا رویدار هستی هم خیلی تو با دست میدست مگرفته همیاری جگه که من پیش او پاچا ببر میگه خود صحیست وزیر صاحب تو برای پاشا برای پاچا مرا نجدیک بساز که گفای مرا بشنام خوب هسته انال مشخصیم گفتن وقتی که ما پیش از او پاچها از تاریخ از اینی اشخاص میریم پس در بین ما و در بین پاچها اینی چند نفر قرار گرفت پیش از این میریم که تو فلان گفت پیش خداوند متالام تشکیل کردن کی تشکیش گفت رسولی است که مثل یشایی مثل خداوند هیچ چیز نیست گفتن خلاص خداوند هم پاچا ورس ما میریم پیش خداوند با رفتن نمیتونیم روی ساتیم شرمنده هستیم این این هو با و, و منات و اینی چه بدن دوستای خدا بودن یا وقتی که مردن انال ما میریم پیش ازی دوست خدا میگه می ای دوست خدا ای هوبل تو دوست خدا هستی تو ما رو به خدا نزدیک بساز تو واسطه باش که ما رو به خداوند برسانی میفتن شما اونا رالی یقربوننا الاله ذلفا بر بخونید آیته قرآن لیقربوننا الاله ذلفا خب اینا اینجج میگه وقتی که باز اینا پرسان میشد که شما چرا برای این بت های عبادت میگه می شما بد میکنیم ما کیف بت های عبادت کردیم وقتی که بر بت میگه میگفتن که تو میری با بود عبادت میکنیم ما با بود عبادت کردیم ما ارگز با بود عبادت نمیکنیم وقتی که برشان گفتن میشد خب خیلی وقتی که بر بودها عبادت نمیکنین خیلی چرا میرین پیش از اینا میگو که یا ما را به خدا چی میکنن دوستای خدا هستن نازدانه های خدا هستن نزدیک هستن به خداوند ما روسی هستیم ما شرمنده هستیم ما فلان هستیم ما به مدان هستیم این ما را به خداوند نزدیک می سازن آیت قرآن آمد که اذا عبادی اگر بنده های من در مورد ما پرسان میکنن کنن سریکن سوری زمر سپاری 23 م اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تنزل الكتاب من الله العزیز الحکیم ان انزلنا الیک الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین میگم ما نازل کردیم به تو ای پیغمبر صل سلام کتاب را یعنی قرآن را بالحق فعبود الله تو عبادت بکو الله را مخلصا به تنهایی با اخلاص له الدین که فقط دینت به با الله باشه به با کس دیگنه باشه الا و مردم آگا باشین لله الدین الخالص که دین خالص به کی است به الله جل جلوه است و الذین اتخذوا من دونه اولیاء کسان که غیر از الله جل جلوه مردم های دیگر اولی و دوست خود گرفتن گفتن که ما به عوض خداوند پیش ای دیگر دوستای خود میریم خداوند متعال چی میگه میگه اینا میگفتن که ما نه اعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ما اینا را عبادت نمیکردیم مگر به خاطر چی که ما رو به خداوند چی میسازن نزدیک بسازن ما برای عبادت نمی کنیم فقط میریم می ریم پیشش عکسش جک میکنیم یگرو میکنیم یک, می یک چهار نظر خدا برش میبریم یک چهار تواب گدگوش گل میزنیم این باز بازی که اینی کار رو کردیم ان الله که الله جل جلاله میگه خب این گپای شما رو قبول نمی کنه صفحه 459 459 قران شریف شما سوره زمر گفت این الله يحكمو بینهم اوه سایکو اینجا گپ گپ گپ خدا رو گوش بگیره. مگه ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون میگه الله تعالی حکم میکنه در بینشون فیما هم فيه اختلافون در چیزایی که اختلاق اختلاف داشتن اینا چی اختلاف داشتن، دیگه دا اختلاف داشتن که نه ما مستقیما با الله رجوع نمی‌کنیم، ما میریم پیش بت‌ها، باز بت‌ها ما رو می‌رسانن، اختلافات شروع کردن که یا دوستای خداوند هست چه دور خداوند متعال جل جلاله جل برشان گفت در رد دلیل از یا که ما پیش از یا ما خنار عبادت نمی‌کنیم، شما ایراد می که عبادت می‌کنین، کی کو گپا میزنن؟ ما عبادت نمی‌کنیم، ما فقط یا دوستای خداست میریم که ما رو به خدا نزدیک بسازن، خداوند متعال با نشونه ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون دیگه گفت خداوند متعال گفت که باز خداوند حکم میکنه در روز قیامت که در چیزی که شما اختلاف داشتین باز خداوند حکم میکنه کی راست میگه کی دروغ میگه ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار خداوند او کسی که دروغگوی باشه و, و بسیار پوشاننده حق باشه و بیدین باشه خداوند او را هدایت نمیکنه چون اینا هدایت نخواستن اگر هدایت میخواستن خب آیات قرآن سریع هست که شما را فقط به الله بکنین مجرد پیش یک نفر که رفت سجده کردی در حقیقت او را معبودت زاختی ای که قبلا سجده های بود در سابق اومت های قبلی به نام سجده احترام که برادران یوسف بر یوسف میکردن یا مثلا ها را گفت که شما سجده بکنین بر آدم علی السلام این سجده احترام از بین رفته در قران عظیمشان آل سجده ما نداریم سجده احترام هر سجده که می‌کنی سجده عبادت است به هر کسی که سرت خم کردی دلت هر چیز باشه تو او را معبودت قرار داری برای سرتا به بر رکوب و سجده پیش کس خم نکن فقط به الله سجده کن فقط به الله رکو کن اینال این شد در توحید در قانون در نیزدکی ببخشید دیگه چی هست ششم قسمش توحید است در افعال و شرک است در افعال توحید در افعال چه قسم است که ما مسلمان ها عقیده داریم که خداوند خلق کننده هست خلق کننده تمام بشریت، تمام موجودات، الله هست روزی دهنده، الله هست محی زنده کننده الله هست ممید میراننده الله هست بناهن ما به افعال خداوند متعال جل جلوهو که به و با عظمت از او میزیبه مخصوص خداوند است به او موحدین عقیده داشتن و ما هم عقیده داریم مشرکین چی میکردن؟ مشرکین میگفتن که نی والا. مثلا اون دوها چی میگن؟ میخواین که امی افعال خداونده و دیگه مخلوقات ارتباط بدن. میگفتن اینی بط ما را بچه میتن این ای گاوگاس اشکو مثلا ما ده این درافتیم گاوها در سرک می‌گردن آلی گاو خانه خراب خوا سرک بغوسو شو یک چوب بزنش میره اون طرف الا لا لا می گاو دست نزنی اگر گاو گاو دست زدی ای گاو واس تو چی میکنه کورت میکنه ای گاو پیست میکنه خوب اوهوبت پرست یگانه کره بگی میگه گفترهای شمشیر دست نزنی اگر دست زدی پیست میکنه اگر دست دس زدی, دس زدی کورت میکنه در یک جای رفتیم خوب که مایا داشت از این ماهی گکاخ یک چند تا صرخ که بخوریم آه استاد نه نه نه نه, نه. در ماهی هاش دست نزنی چرا؟ دلوگرم مچه صرخ یک جایی بود برام چیز رفتیم مسجد از زیر از او یک دران جوی است و در جوی ماهی هست در این ماهی ها دست نزنیم او سات که پیست نگفتم خیلی از بیار که پیست حاققا کلام دردم برکه برکه چی برده؟ ما بلنطه مالپین علیها پدر پدری صاحب دبی قوا رواج مونه کسی مایر خورده نمیتونه کفتر سخی جان هیچ پرسان نکن پس ایناله اینجا متصرف چی هست یک درس, درس مشخص یا ما یا از مولوی صاحب یکی استاد دیگه سزو چیز میگم که یک روز مشخصا در باری تصرف بر ما درس بده که شک در تصرف چی هست که <تصفح> انسان متصرف تمام دنیا که از خدای عصر و جلست یه کسی میگه نه نه نه نه چهار تا دوستای خداست بروی اینمی, برو اینمی چهار تا دوستای خدا اینمی چهار دوستای خداست که کابل نگاه میکن اگه اینمی کابل چیست؟ غرق است خداوند حفظ میکنه؟ مي میگه نه اینی چهار نفر پس این چهار نفر در تصرف خداوند متعال جل جلو چی کرد؟ بسیار سخت است بین که عقیده رو از قرآن بگیریم بین برای از خدا قرآن را بکن بین نکنیم نکنیم قرآن رو بخانیم آیات قرآن رو بفهمیم از این خاطر یک کسی میرم. الله میگه که زنده کننده من هستم میلانین ده هستم یک نفر میرم میگه نیز زنده کننده شاید شمشیر است میلانین ده شاید شمشیر است تو غایزه شور میده، که ما تو میکنم اگه مرا بچه می خدا خرابت کنم در به در شوید مگه قدر زور میراشم که برای بشه بچه و دختر بتم خیلی خودم به زیر کورد خاک شده از نمیه اقل در تا اقل کار پر تو بعضی کسا عقیده به قلف داره این قلفه کو مراد داده میشه این قلفه اگه واسه چنگه و نفر خدا در قلفه کرد. یک نفر یک دنب قلف بابا کیدانی در ماش میکد اگه چینایی تیر شد گفت چی میکنی؟ <متضوع> یه قلف ها گفت میدن چینه چینه خانه خرابی رو چینای ها ساختن میدن با... بابا کیدانی میدن چینه باز اگه بسیار میخوای بیا زنده شد دستای مره ماش که یک جور شد زنده شد قلف ساخته ماش, ماش بعضی کسها با چو بخیجه دارن هم؟ گردگرد به گردگرد بن ب فامید نقدار خندم کین نکییده بفامید و خدا امی شد که داشتی خدا و غیر از شل هر گنا را میبخه یکی از گناه کرده نماز یادش رففتتر روزی خذا شده اشتباه کرد کرده و غلطتی کرده میگه این اینقل یا ابادی الذيین از سفران پوسه اطراف کردن در افای خود روزو بکنین و خداون, خداون بی سال نماز نخواید تسب بیا بخوا خدای آشتی کردم خداوند کمی هر لحظه بخوا آشتی کنی خداوند قبول میکنه. بیا نماز نبه رسوز جنگ... 20 سال جنگی است من خیر است خدا یاد کردم توبه کردم نماز نخانم قضا شده لاهی بنده هستم اما یک چیز خدا نمیبخشه که کت خدا چیز رو شریک بسازی در روز قیامت مشرکی نمیگه خلاص سو طرفین استا شوم شما از رحمت خدا محروم هستی شما از رحمت خدا محروم است. اما دیگه مردم را می خیر است منتظر رحمت خدای عزوجل باشید هر اشتباهی که کردی از شرک خدا نگو و خمد در افغانستان است که هیچ که دباری شکل گپ نمیزنه دباری هر چیز گپ میزنه در افغانستان چی گپ است کلگیره مشناسیم وزیره را صدرازمه را دوستای خدا را صحابه را فلانی را بچه فلمه دختر فلمه است بر کلش وقت میدیم، اما الله را نمشناسیم صفت های خداوند امیل به این امکان بگیرین از ما خودم ناکامی منم امیل من مطالعه شروع کردیم مانایشه اگه کس میگه بیا من برت نو نام خداغن دار 5 5 دقیقه به رویال کدومش gap میدم به یک میگ ازوری بیا میله کس هست چالش بدن با شمول خودم نمیتونیم تحقیق نکردیم درس نداریم پس خدا رو وقتی که نشناختیم به غیر الله میریم وقتی که الله را نشناختی با کی میری غیر الله اما اگر الله را شناختی با پیش کسی دیگه نمیدی خب اینال بسیاری کسا مشرکین عقیده داشتن که اینی بطه بطه تولسی، از این خادرگرد گرد, گرد بطه میگشتن مسلمان ها گفتن نه ما بطه تولسی نه ما درخت شنگ درخت شنگ یک بوته درخت است باز زیر از درخت شنگش تو خاطر می کنم از تو خاطر کو ها چی گفتم گفت در درخت شنگ تیر میکنم که درخت شنگ ماشین که شنگ شنگش خراب است یک یا شنگاست کدام جوان پیدا شد چی بدن تان می خرد تکوان می درخت شنگ من انتظار را خوب یک تا برای شنگ تا درخت شنگ ما برد شنگ خدا چند سال تو شنگ تن نشوند شنگ که شنگ لاله ایت این یک شتوکک مادرش ورخطاستی سی سی سی می توانیش امیر من خودم شدیدیم دیدیم خانی ما یک وقت در می نوابات دیفغانان بود و بقال کم آنجه چشمه او بود یک درخت بود زنا می آمدن در زیر درخت یک زنا که آمد آروسیس ورخطاست زوزززززشتوک که خونداغ کرده و چیز کرده و در این سرشان شم یک دسمارک پنگ میکردن. اید اسم ولش کرده و سایب شتک کامی که چیخ میدن کالا چی چی راست چی راست یه چو شتک چپ نمیشه خویا کیود دیگه او دیگه او دیگه او دیگه, دیگه بلاخره ایرا سایب داو دو داو که بیان دزیر از از درخت که داو کولاب چک زیر درخت ایرا تیر کن ایرا یک دفعه تیر کردن دو دفعه تیر کردن سه دفعه تیر کردن کی انشافاب و خوب سر این حقیقی شرکامیس خب بلاخره نشد باز باز تو گفتن ناله همونجا کالا کاش چبود کسی چهار دفع باز گفتی که نشد اینال گفتی رو لچ کنین و دمی چشمه یه وی اخیر یک دفر بشوین و همه خورد خورده سهیم سهل داریم دیگه مشتگین و گلاب چکوان آرسون ازی دارم خب مام نمی فهمم بگرد اشتو که واز که <تصفح> واز میکنم اشتو که خونداخشه که ای مادرش کی پنگک ازده ای پنج عدد سه زیستک چه خریده؟ کرده که واسه کارنگفتم خدا تابویت هنگام که درخت ایره روز بعد پس یک دکتر پاسخ میگه که سه خونای شریکت میماره. اینا کلا گفتم سه زیستک نمونه یک بود. خدا کنم خالق که بازی میفکیم ازش درخت کی از برای خدا؟ این خون دو که داده که داده درخت تابویت مسلمان. او قرآن او کسایی که میگن ما وحدت بالاخره اون دوها دگرد گرد بطه تولسی چرخک میزنن میگن این بطه مقدس است مشرکین در گرد, گرد یک درخت چرخک میزنن شب تا بر شوی خود روزه میگرن باز گرد گردیم درخت میگردن در او میخ میزنن چی میزنن بود پرستان میکنن این کار میکنن اتا در حدیث شریف آمده که ذات انواد یک درخت بود که مشرکین میرفتن پیش از چیز میگن در زمان پ یک تعداد کسایی که نه مسلمان شده بود فکر میکنن کردن درخت البته درخ مرخ کدام چیز داره گفتن این پیغمبر خدا بر ما می خوامت یک تنها ذاته انواز جور کو همونت یک درخت که ما هم بهش چیز کنیم پیغمبر سان گفت این لله و ان الیه راجعت شما اونم کارهایی که یهودا کرده بودن همون کارهای یهودا رو شما میکنیم. مثل که از موسی علی السلام خواسن که بر ما پوت بساز و گوساله بساز اناله صیف شما آرامید پشما که برای ما درخ درخ درخت بساز درخت چیست عطاد ازیر درختی که بیعت عقبه شده بود بیعت عقبه شده بود سال آینده که دیدن صحابی کرام که بعضی کسا میره که یه درخت است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیر ازی بیعت کرده صحابه که دیدن که مردم مشرک میشن میرن درخت ماش میکن یک تبرگرف یک صحابی هم تو جوان زد درخت درخته که نامی جا قرآن آمده نام درخت در قرآن آمده که تحت شجره ای درخته کردن این درخت یا کسی همونتو گفت از راه تیر میشه یک کسی همونتو گفت این جایی که من اما هست خودم امون درخت از ام درخ گفت برادر ما که صحابی ازم او درخت ها نمشناختم که در کنها منطقه زیر, زیر باید شده جایز رو وقت صحابی اکرام خراب کردن که اینجا مردم مشتک نشه و درخت پرست نشه. شما علامه آمدین سیم که اینی چیسته اینی جایش شست و دروغ دروغ بافی رو پس در اسلام درخت بافی و زیر درخت تیر کردن و ایگفا شرک در تصرف میگن که انسان چیزهایی که مربوط خدای از سفجال است او رو ما بگن که با تا ای کار رو میکنن با تا برمش شفا میتن درخت برمش شفا میتن یا مثلا فلانی شفا میتن یگان کسی به مورگکای ایمان آوردن خانش اشتوک شده اه؟ اول اشتوک برش خدا داد. میگه خانه خراب خدا دادت یا محمد خیلی نمیشه داد بون؟ این حالو میگن محمد داد خب یک خم خم دوم می... ایس که باز مادر کلان کمپیرش میخیزه یک دانه موری کونی چرک چتله او میاره سر باربندش بند میکنه ای چشم موره هست چی مانه چشم موره میگه ای نظرها را م... میگه چرا الله را نمی نمیکنه اطفلوت را الله حفظکنه خوب است اخب الله بکنین و اطفل مراکا او کو این مرا رو نکن ایده انیزم و چ ترکایی او میم چ تور های تیش نگپا ای, ای در قدیم بود که مردمایمرره پرست و مردمای طولانی پرست و مردمای سنگ برست و بعضی کس ها سنگ چیز میکنن و بعضی د پای ب چک اینقدر گشتتو که سنع کرده او رو باز پاش چی میکنن هیچ کارای خط و ناراار و مردم نکنین از برایای خدا وازی که اصا سنگه میره، وازی کسا اصا سنگ خوجا مسافر هم میره در خانی خود میمونه. کارایش ناره وا، کارایش که تو به جای که به خدا خود تسلیم کنی میمونه. سنگ خودت تسلیم میکنی، به خش خودت تسلیم میکنی، به چوب خودت تسلیم میکنی، به درخت خودت تسلیم میکنی. یا مخلوقات هستن. پس اینجا که تصرف شرک آورده میشه که من گفتم باز یک درس خاص با و مفصل تر داشتیم. خب ایناله آخرش کی توحید در اسمای خداوند است نام های خداوند متعال جلجالو مثل نام های انسان ها نیست نام های خداوند متعال جلجالو جل اسما و صفات از سیانی خداوند امون نام که گفته بر ما امون صفت هم داره نام خداوند است الرحمن و صفت رحمت هم داره الغفور مغفرت صفتش هم داره تمام نامهای های خداوند با صفات شد از این خاطر نامهای های خداونده میگن اسماء و صفات یعنی نامه هایی که عین صفات هم خداوند متعال جلد جلد جل. چه قسم صفات داره؟ اینه میگم صفاتی که به ذات خدای عز و جل میزیبن بعضی کساس در این معارف یکانت کتاب نوشته میکنن در کتاب های معارف صف دوازن نشته کرده که عین ذات و غیر و ذات فلانی نوستادش میفهمه؟ نه گردش میفهمند. دستن فاید 12 رو شکردن صفات خداوند عین و ذات است. یعنی فلسفه رو داخل کردن در باره در, در عقیده. گپای ارسطو رو داخل کردن در عقیده، گپای افلاطون رو داخل کردن در عقیده به نامی عقیده، گپای افلاطون ارسطو رو درس میده. او چاگه نگه ارسطو رو میفهمه، نگه افلاطون میفهمه، افلاطون به چه زیر ناخن‌های دستش که سال می‌کد، هزار مکروب بود ویروس. نه می‌فهمید که ویروس است چیست. لقمه‌ای خورد، چلطا ویروس کهش خورده میرفت مکروبه. واز لویی پاستور احمد باز میکروب کشف کرد و بالاخره بر مردم گفت که این میکروب است اینا اون افلاطونی که میکروبای زیر دست خدا نمیشوخت بر ازو ورا میرن سر از عقیده درس میتن اینا ال وقتی گپارو داخل کرد عمو گمراه شد عمو دیگه راه عمو صالح شد چون ساعت به چرا خودش نفهمینه یا جوهر و عرص برادر جوهر قایم بذات است و عرص چطوره که زو برای جوهر و عرص که است این موضوعاتی است که مربوط به مخلوق میشن تو وقتی که خدا را معرفی میکنی مخلوق داخل نکو وقتی که درباره خداوند گپ میزنی باید بویی که لایزه کمسلی شی هر چیز خدا را که میگیری باید فورا با طرف مخلوق فکر تنابر کی دمی طرف مخلوق بردی تشبیه کردی چه شرک در صفات خداوند متعال جل جلاله میشه شه از این خاطر نام های خداوند متعال جل جلاله اسماء و صفات است هر نام خداوند با اون صفات هم خداوند متعال جل جلاله داشت داره از این خاطر ما اسماء و صفات الله جل جلاله را میگیم که در ما به اون عقیده داریم که اسماءی خداوند اسمایی است که به ذات خود خدای عزوجل میزیبه و عمو صفاتی را داره که به خدا الله جل جلاله میزیبه اما انسان نامای انسان فرق میکنه یک نفر نامش از تورگل خودش از سپینگل نامش از تور پدرش مانده نامش از چی تورگل اما خودش همین سفید است یک نفر را بی ببینی که مثلا نامش پدرش مانده سخی خودش ابھی رو تو بخیل است که در این پیکرای موتر دسته خود قسمی ویل باش استاد ما نه ببین ما تو تاش اكو مونده من بو باش, باش. این رو ما باش بتو قلط کرد چرا سخی از تو استخرم سخی لوکن بخیل است یک زنه که کمپیر رو جای جایی دیدم گفتم نامه تو نامه روش روی شملاق غریب بچاره از شاد سالا میمورد من اگه نامه چیست گفت نام گل بهار. اوه اوه اوه او ای گل بهار. از این خاطر نامه های انسان ها گایی با انسان میزه و مانایش هم میداشه باید نمیداشته باشه از این خواهد نامای ما شما از و صفات نیست نام مانده مادر و پدرش لکن او صفت داشته باشه یا نداشته باشه اما ما نباید نامهای خدا با نامهای خدای از و مقایسه و مقایسه بکنیم ای بود درس امروزی ما و شما سبحان رب بکراب بالعزیزتی امای و سلام على المستلین و الحمد لله رب العالمی برحمتی سوال داشت میشن وقت داریم داش که خداوند متعال جل جلاله بر ما وقت میده. صحیح اراده را چه قسم بفهمیم؟ که یکی اراده تکوینی هست و یکی اراده تشریعی. اراده تکوینی چی مانا؟ اراده تکوینی مانای شی است که خداوند متعال طور اینمی قسم خلق کرده. زمین اینو میقسم خلق کرده، آفتاب اینو میقسم خلق کرده، جهان حسیر خلق کرده، دوزخ اینو خلق کرده، جنت این اراده تکوینی که ما مجبور تسلیم شیم. اراده تشریعی است که اراده کرده که مثلا تو باید نماز خوان باشی، لکن برای تو هم اراده داده. مطوئی هستن بنان اینجا این که بر ما تو اراده داده امی که خود خداوند متعال و پیغمبر صلی الله علیه و وقت میگه که تو برو با موسی سلام السلام میگه که اجازه میده که تو برش بگو و, می می و با موسی سلام میگه و پس به پیغمبر سلام وقت داده میشه این مربوط به اراده تشریعی میشه که خود خداوند به اراده خداوند این می میرافته میمند آیه پیغمبر سلام به اراده خداوند رفت و آمد میتونه اگه میفهمید می که نمیجه اراده خداوند قاطع است پیغمبر هیچ چیزی نمیگفت اما خود خداوند برای انسان اجازه داد پس امی که برای ما اختیار داده برای ما اجازه اجازه میده و پیغمبر خدا اجازه داده ای هم شامل اراده خداوند متعال جل جلوه حدیثی که دباره نماز است انشاءالله الله تعالیم من دقیق رو تو چیز تحقیق میکنم اما حدیث هست بلی که بخوام به همه در این شد در بله شد میخواد که این جنگ چند تا کرش مردار میشه خلاص یکی مردم می هر چقدر امریکا آمریکا میتونه کرده هر چیزی که الله بخواد در خود امریکا پارسال و طوفانی که شد خود ها که در 270 بودن و کل گدایگری میکردن حتی مردم رفتن براش با پیشه کمکی روان کردن امریکا امریکا چی امریکای بیچاره او بعضی مردم هست که عقیده ندارن با الله ازی خاطر وقتی که الله را نمیشناسن ازی خاطر ها و ها کت بینکر... نه کت ها سونامی بینی لول شما سونامی را یک سر که خداوند وقتی که و زلزله ها وقتی که عادی اگر یه امریکا و یه پاکست مثل عاد و فرعون و سمود واره انشاءالله تباه میشن و تباییشن هم انشاءالله دنی افغانستان است <تصفيق> نکنین برادر تعظیم و سبحان چیدست اگر دست پدر تا ماش میگن دست بالا کود داند زیاد خدا پایین و کور نکنین بله عزیزت پیغمبر سلام وقتی که نو همیل من کتاب نشته کردیم و در چاپ آمست شاید تا افتی آینده یک افتا دو افتا بخر چاپ شد به نام رحلمای اسلامی سرزمینی بحث کردیم پیغمبر سلام وقتی که نو آمد دید که مردم نام عبداللات ماندن عبدالعوضا ماندن عبدالحوبل بود مطابق حقیلیشن گفت بهترین ناما عبدالله عبدالرحمن است این نام‌هایی که چیز ازت حضرت محمدصلی خدای ما نبود اعلی اذهب ازت حضرت بنده بود از این خاطر نام های محمد خالق و محمد رزاق و اینی نام را که می‌مونیم نام‌های غیر اسلامی هست شما میشه بازو کتاب بخونید استفاده هیچ کار بکنید دیگه تو غلط هستن طبعا یه چیزی هست که ما با صفات, صفات خداوند ما از بحر صفات خداوند مطال یک قطری میگیریم اما ما نمیتونیم خدا با صفات خداوند بسازیم صفات خداوند کبریا هست ما کبریا من تواضع میزیبه کبریا ذات خداوند میزیبه من میتونم که از صفات خداوند از کبریا خداوند بگیرم ما هم خدا متکبر بسازم نو no. انال درست است فهمیدم فهمیدم. انال مثلاً تو مهربان هستی مهربانی تو چقدر است؟ تو این مکان مهربان هستی که اگر یک پنجای داشته باشی زود دچی به باشگاهت چخ میکنی. سعی اما مهربانی خداوندی است که بر کل ما دو چشم روشن بر کل ما داده، بر کل دنیا داده، بر کل که رسم میده بر کل که روزی میده انال ما مهربان استم خداوندم مهربان است، لakin چه تعدادی از ما مهربانی خدا با مهربانی خداوند با قایس نمیتونیم کنن. چون مهربانی خداوند حد و حدود نداره ما مهربان بسیار کم هستیم بران بعضی صفات هست که برای انسان میتونه موی که انسان مثلا این صفت داره مثلا انسان هم میتونه خالق گفته شده و خداوند هم خالق گفته شده لاکه انسان وقتی که یک چیز را جور میکنه این میز مجبور میکنه مجبور هستم از چوب از درخت چوب بگیرم بازی را جور بکنم اما خداوند متعال وقتی که یک چیز را جور میکنه اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون از ما و شما ساختن ما تبدیل کردن و تغییر دادن است یک چیز تغییر میدی می‌دی یک چیز دیگه می‌سازی اما خداوند متعال از هیچ هست می بدی و سماوات و خداوند آسمان و که هیچ نبود خلق کرد از این خاطر مثلا بعضی صفات ها هست که مثلا من عالم هستم خداوند هم عالم هستن لکن من عالم هستم داشی فقط زبان فارسی رو یک چند کلمه از پشتو میفهمم یک چند کلمه از عربی میفهمم اینا دنیا به هزارها زبان است من نمیفهمم پس علم من علم من کوچک ناقص است علم ما با مطالعه ذره دارن منم میتونم علم خداوند با علم خود قیاس بکنم خداوند عالم غیب است ما ظاهرا تو رو بسیار خوب آدم هستی اما خداوند است قلبتون میفهمه من از قلبتا میفهم قلبتا هیچ خبر ندارم بس ما نمیدونه که اینی هایی که گفته شده که در این میتونم مثلا رؤوف بودن یا مهربان بودن این ها هست لکن بین صفات خداوند و بین صفات مخلوق بین زمین و آسمان فرق است یره مطابق ندی دیدیم تو دقیق بسیار شو د دقیق نهست خاطر ادم باید احادیث ببینه تا متعقف نشه این هر که کی مثلا اغنامه پیدا کرده و گفته ایره باید دادم قبول نه کنه سبحان ربیک رب العزت عما و سلام علی المرسلين والحمد لله رب العالمین پروردگار ما را توفیق نصیب که عقیده خود مطابق قرآن بسازیم و موحدین حقیقی باشیم و نام تو را و صفات و عبادت تو و در قانونت و در همه چیز از قرآن عظیم شان بکنیم پروردگار را برای ما توفیق نصیب بکنیم که آخرین کلمه که از زبان ما خارج میشه کلمه لا اله ایلالله و محمد رسول الله صلی الله